اما به بخش دوست داشتنی برنامه هم رسیدیم هفته گذشته به لحاظ حضورمون و مواجه شدن با دومین دو کگرره برنامللی ایمنی جاده ها که در بیمارستان رضوی مشهد مقدس بودیم خاطر بینندگان خودمون هست توفیق بهرهمندی از فرمایشات مهمان گرامیمون رو نداشتیم این هفته با اشتیاق و شو خدمتشون هستیم و بهره میبریم از حضور ایشانه مهمان گرامیمون، استاد محترم، اندیشمند گرامی، محقق کرد و استاد و مدرس دانشگرده ی سنتی جناب حاجقای زیایی عزیز سلام ارزمی میکنم، فرا رسیدن سال روز وفات کریمه اهل بیت رو هم به محضر شما و همه سادات عزیز تسلیت و ترزید میگم من هم متقابلن. سلام خدمت شما همه بینندگان عزیز سلام ارزمی کنم سالروز روز شهادت این بزرگواران رو هم تسلیت ارز میکنم زیرا که معصومین و همچنین تالی تلوهای معصومین همچون حضرت عباس، حضرت زینب، فاطمه معصومه و مانند اینها اینها به مرگ عادی نماردن اینها رو به شهادت رسوندن گایی با زخم شمشیر و مانند او و هم به سمت مهلک. از این را همه شهید شدن حتی رسول الله که هفت سند داریم در کتب شیعه که به خاطر سم ظالمین آلم به شهادت رسیدم از جمله فاطمه کریمه اهل بیت طور شیعه هم مطالب فروانی هست یه چند تا شیعت کردم مثلا در بهار جلد 84 ادری آمده بودن سوال داشتن از امام موسی کازم علیه السلام حضرت تشریف نداشتند پاسخ سوال تمام اون کاروانیان رو به دقت حضرت معصوم علیه السلام پاسخ دادند سنجیده دقیق بعد که امام موسای کازم علیه السلام تشریف آوردن و جواب بسیار خوبه دخترشون رو آشنا شدن حضرت اینجوری فرمودن پدرت به فدایت نظیر تعبیری که رسول الله صلی الله علیه و, علی و سلم در رابطه با فاطمه سیدت نسای العالمی حضرت فاطمه زهرا فرموده یا مثلا فرض کنید که تو بحث ادب سخن گفتن که در بهار علامه مجلسی جلد 78 صفحه 127 حدیث 10 مطالب زیادی داره یکی از درسایی که ما از حضرت فاطمه معصومه علیها السلام میگیریم که ادب سخن گفتن نسبت به پدرمادر نسبت به همسایگان نسبت به قوم ها نسبت به همکاران خیلی مهمه همون سنت رسول الله رو احیا کردن نعم خوب بودن خوش زبان بودن و نامحرمان کرکر نخنده جکمک نگه از این حرفا بلکه با وقار باشه حرکات و سکناتش دارای افت و پاک دامن این سه محبت واقعی به امام رضا علیه السلام. محبت واقعی به امام رضا داشتن و ابراز محبت به اطاعت و تبعیت از فرامین رزوی از فرمانهای ولایت حقست و ما این درست رو از حضرت فاطمه معصومه علیها سلام میکنم همه امت مرحومه چه اهل تسنان چه اهل تشیع اگر دوست دارن امت مرحوم باقی بمونن باید ولایت مدار باشن تا حق تا حق محور باشن و باقی بمانن ان شاء الله پس دیگه هم هست چرا ما بلایت محور و حق محوریم به خاطر اینکه رضایت خدا پیچیده شده در رضایت 14 معصوم و الله منتوب فی رضایت خدا پیچیده شده گره خورده با رضایت چهارده معصوم یک روایت دیگه خدمت و خدمت بینندگان عزیز احس کنم که در کافی شیخ کلینی جلد دو صفحه 238 حدیث 8-239 حدیث از طریق سامانه <تصفحه> پیام پوتاه و بیست و پنج سوالاتی که پیش روی من هست و من خاطرم میاد که استازی های از من در برنامه های گذشته بارها و بارها پاسخ دادن اما شاید برخی از بینندگانمون در اون برنامه محفظ نشدن که پاسخهای حضرت عالی رو دریافت بکنن همه سآلاتی که از حضرت عالی پرسیدن بینندگان خوبمون در خصوص پروستات هست که من خاطرم هست یک جلسه کامل فرمودید و رمه میده و سوزش و اون داروی گیاهی که ما رو به آرامش برسونه و عصبانی نشیم آرامی نداشته باشیم در خصوص ناتوانی جنسی در آقایان سوال کردن جوش و لکه‌های صورت استرس زیاد کمخوابی های مو لاغر شدن مثلا در ناهیه شکم حساسیت و ریزش آببینی ورم معده و بیماری میوپاتی اگر اشتباه نکنم اینجا نوشتن کمردرد لکه‌های سفید در بدن بیماری زونا سردردهای شدید داغی کف پا انگام خوابیدن اینا فرسشتاییه است که اهم پرسش است که مطرح شده اگر اجازه بفرمایید چون این پرستج خیلی شایع هست و خیلی هم زیاد بینندگانمون مطرح کردن در خصوص پروستات که در آقایان شایع هست مجددا توضیحاتی بفرمایید. تبرم کلا پروستات حجقاس بیماری در یکی التهاب پروستات وقتی که باکتریایی بشه که ادرارشون تو آن با سوزش در ادرار یک بار تورم پروستات به خاطر ناطروهیزی و یا رفتار منفی با خودش که 11 علت داره درمانش هم حدود 20 ده هست یکی دیگه از بیماری‌هاشام سرطان پروستات بیشتر اونی که شیو داره یا التهاب پروستات و یا تورم پروستات گرچه در سال‌های اخیر سرطان پرستاد همچون سرطان مهده همچون سرطان کلون روده بزرگ در آقایان هم شایع شده اونم به خاطر ناپریزی و رفتار منفی با خود مصرف قنده شیمیایی شکر شیمیایی نجات قنادیا شوری زیاد مثل خیاشی و که مشهدی درست میکنم کم تحرکی اضافه وزن. نگهداری ادرار نگهداری منی سخ کردنی تفتادنی بودادنی لذا اینا باید آجیل و تخمشون خام بخورن شور و داده بوداده نخونن پیازدار مانن اینا بوداده باشه تفتاده نخونن این یازده چیزی که براشون بده ترک کنن بعد 20 تا درمان داره قویترین درمان که از هر داروی گیاهی و هر داروی شیمیایی قویتره یه قاچ خربوزه با پوستش خوردن پوست خربوزه سمنیه نباید زیاد بخورن یک قاچ خربوزه با پوستش بهترین زمانش بعد از شام قبل از خوابش شده یک قاچ خربوزه با پوستش بجوان بخواد افرادی که پروستات دارن بله تبروم شدید پروستات دارن حتی پرونده داره زیر بغلش که فردا بیا مثلا پروستاتت عمل کنی به سه شب حاجبا پروستاتشون باز میشه حتی اگر پیر باشن سنشون بالای هفتاد سال اینم قابل عرض هم مریضا هم دکتران محترم بعد از سه شب حاجبا یا چندین شب دیگه لازم نیست دیگه فقط همون خربوزه رسیده نمی دیگه پوستش لازم نیست حالا اگر تو فصل زمستان یا تو فصل پاییزن زن فرض کن مثلا خربوزه گیرشون نیمه اینجا پوست خربوزه که کاشت و داشت و برداشتش همه سعیه خوش شدنش همه درسته با دستگاه تل برقیه گنزودایی شده همه چی تموم حالا میتونن به نسبت مساوی پودر پوست خربوزه با پودر تخمه خام کدو به نسبت مساوی مثلا یک قاشق چایخوری از این یک قاشق چایخوری از این قاطی کنم بخور اینم قوی ترین دارو یعنی از این داروهای شیمیایی طرح جنریک ایران پرازوسین از این قوی تر یا اگر مثلا دکتر معاینه بالینی کرد من میگه احتمال تومور خوشخیم پروستات هم داره از این قرص شیمیایی فینا سیترایت که دکترهای محترم میگن یکی صد بخور یکی شب از یک قریته یا خارجی های کانادایی مثل اومنیک مر. یا مثلا جاپونی های جدید که آمده اومنیک که اومنیک نسبت به قبلی این خوبیه داره که هم تورم پروستات رو کاهش میده کم کم هم جلوگیری از پیشرفت تر میکنه هم نمیگذاره مریض دوچاره مریض مرد دوچاره خستگی جنسی بشه حالا تو داروهای مفرده حالا این داروهای چی بود؟ مرکبه یه اسمی نیگه که یه قاشق خربزه رو با پوست سه شب مصرف بعد از شام قادر از خواب شب. افرادی که میخوان تورم پروستاتشون بعد بله با سریع بله. جواب میده هاجم حالا اگر فردی مبتلا به دیابت باشه چون خربزام قندش بالاست که بله بله. و انسولین هم تزریق میکنه. حالا اونجا چیکار میکنیم هاجم تخمه خام کدو با پوست خربوزه بله بله همینه که گفتید یه قاشق خوری یه قاشق چایخوری نه تخمه خام کدو قندش بالا میداره نه پوست خرگوز هیچ کدام خیلی متشکرم فرصی وردی رو میتونیم مطرح کنیم داروهای دیگه هم بود هم مفرده مثل تخمه خام کدو به تنهایی اگر میدش قویه میتونه با پوست به جای اگر میدش ضعیف زرش که خام بله. گوج فرنگی رسیده یک عدد می... بله. میوه کیوی رسیده همون لپای سبزش بله. خام به صورت نارست نباشه که شقاق زبان نگیره میوه کیوی رسیده لپای سبزش اگر فرض کنید یوبست هم داره با پوست قهبه ایش به جوه ملینه ولی پرزاشو یادم فرمودید برای افرادی که آسم دارم خوب نیست افرادی احسن پرزای کیوی باید زیر آب ببره با پشت چابو پرزش آسم یاره اما پوستش مصحله خود لپای س حالا اگر کسی فرض کن دیابتی هم، ها. حالا یک عدد میخوره هم پروستاتش باز بشه هم یکی از عوارض دیابت یوبسته یوبستش هم خوب شه بله افرادی که لرزش دست دارن اینه میگیم بیماری رحشه. رعشه رعشه یعنی لرزش غیر اختیاری اندام. بله اینجا ترانس چربی بالا. نخوره و شیمیایی نخوره بله داروش چیه؟ دو چیزه آلو بخارا دوم انار شیرین یه شید. کاتالیزار مجاورتی هم کنارش بذار مثل زرش که خام لرزش های غیر اختیاری اندام مخصوصا دست، که و گردن فاصله این دوتا دارو دوازن ساعته اون کاتالیزار مجاورتی هم که بین روز یعنی اون زرش که خام بین روز عصرونه مغرب تا خواب یه قاشق پلوخوری زرش که خان چند تا چند تا تو دهنشون میزنن تا آب شه این مال سرعت به خوب شدن ببخشیم هفت عدد آلو بخارا دونه دونه تو دهنش میزنه از صبح تازه همدونه آب بشه یه باید حسی میزنه کنار زود قورتش نده نه جبه انار شیرین هم میتونه بعد از آراه یه استکان تا یه لیوان آبشه بخوره فصلی که نبود یه قاشق پلو خوری رو به انار شیرین بسیار مادر محترم می سآل کردن که لکنت زبان فرزندشون با استفاده دارو گیاهی ممکنه بله بله صد درست بله یه اشتباهی تو ایرانی های محترم هست در شون مثلا لکنت زبان میگیره یا لکنت زبان نداره لکنت زبان نداره اما بلعرز آرز میشه آنجا که کودک شش ماهش تموم شده به عنوان غذا کمکی بهش میوه موز میدن اما بیش از اندازه یعنی چی؟ یعنی برای این کودک در 24 ساعت یه تیکه موز رسیده بخوره زیاد هست حالا خونه خواهشون میخوره خونه آقا بزارد و فامیلا همکارا میره میخوره برمینی بچه زیر سن دو سال با اینکه که مثل چهچه مثل بل بل چهچه حالا که لکنت زبان میگیرم به خاطر موز زیاد خوردنه که لکنت زبان میاره در کودکان بالای ماهگی تا دو سالگی و هم عقب موندگی ذهنی آرضی میاره حالا یه تیک موز رسیده خورد تو بیس زیادن هست زیاد هم هست برای, هم برای رفعی موز الواجه خواستم بگم این یه اشتب اشتباه دومشون حاجه اینه که زرده تخمه ماب زرده تخمه کبوتر زرده تخم بلدرسین میدم مثلا بچه خودش لکنت زبان داره یا میخواد تازه صحبت کنه میگه از این زرده بهش بریم تا زبانش باز شه میدم اشتباه مشهوره که مات شده همه جا اینها لکنت زبان خودش میاره بیشتر هم میکنه کبد بچه رو هم چرب میکنه چون کلسترول بد LDLش بالاست اینم اشتباه دومه. حتی بعضی دکترای محترم ما هی میگه شش ماهش تموم شد از یک چهارم زرد تخموم شروع کن میگه قضا قطعه که شما از یک چهارم زرد تخموم شروع میکنه چون یکی از مشکلات ما داخل کشور کبد چرده اینجا قربون امام صادق علیه السلام دارن میگه اگر میخوایی پیشگیری کنی از لکنت زبان و یا درمان کنی و بخوای منحنی رشد بچه چه؟ رشد قدیم؟ چه بحث بلوغ جنسی تو هم با بلوغ فکری مناسب باشد میگه انار شیرین به کودکانتون بدین. هم امام صادر علیه السلام فرموده هم امیر المؤمنین علی علیه السلام فرموده هم زود به سن شبابی میرسن یعنی بلوغ جنسی توان با بلوغ فکری هم منحنی رشد قدی بچه هم مطلوب میشه هم زبونشون سریع باز میشه از سراعا لالسنتهم اخ ما فرمایشم معصوم باشتیم کنار کپیرایت کلکرانه از قرب و شرق میکنیم و یک چارانه زرده تو تازه بعدش اگر آدم مثلا بچه خیلی ضعیفه متخصص اطفال یا فوق تخصص مثلا نوزادان صلاح میدونه این بچه مثلا یک چهارم زرده تخمه بخوره باید موارد احتیاطی رعایت شده یک این زرده تخمه خوب بجوشه تا بچه دوچار آنفلانزای پرندگان نشده زیرا این آنفلانزای پرندگان اگر با آنفلانزای انسانی جمع بشه بچه میکشه احتیاط دوبار تو روایاتش اومده. ای میگه این تخم مرگو نخورین مگر با پیاز. تا تسلوب شرائین نگیریم. تو پزشکی جدید ثابت شده با امسال هشت ساله. که اخبار علمی مینی تکس میگه اگر تخم با پیاز مصدر بشه کلسترول بدش LDLش اول میره. خواستم بگم امام صادق علیه سلام کهی فرموده؟ علامه مجلسی که سال 1111 مرحوم شده تو بهار جلد 66 چاپ اسلامی تهران جلد 63 آورده پس ما مسلمون از شیعه و اهل تسنن به امام صادق و امیر المومنین که عمل کنیم ها هم در زمانی هم از زمان جلوترین چرا ما بریم گدای قربشق باشیم کپیرایت کرکنانه به نوع ترجمه ترجمه کتاب‌های پزشکی قرب و شب برای تحقیق و پژوهش خوبه اما نه اینکه کتاب‌های مرجع دانشگاه باشن. و یا آدم همش تو ترجمه بمونه ترجمه استاد حرکت عین صنعت مونتاژ صنعت مونتاژ استاد حرکت صنعتیه نه اینکه دائما کشور تو صنعت مونتاژ بمونه پس کی میخواد خلاقیت نوآوری کنه بلد. به اصطلاح آمیانه هجرا گدای قرب و شرق نباش بذار قرب و شرق به شما مراجعه کنه بلد. تحقیق و پجوهش خوبه اما این که آدم پردازش اطلاعات نکنه و گزینش اطلاعات مفید نکنه این بده درسته. برادر عزیز جانبازی فرمودن که در اسای دفاع مقدس شیمیایی شدن همه. پوست دستشون دچار پیری زودرس شده برای رفع این مسئله باید چیکار کنه بهترین دارو برای رفع پیری زودرس یکی خوردن پرتقال شیرینه بله حالا این بزرگوار با هر وعده غذاییش یک پرتقال شیرین بخوره و بهترین روغن برای ایشون روغن بنفشه طبی که ماساژ بده برایش طبی بله بعضی از شهروندان ما از معذل درد دندان و اینکه که دندان های آهکی دارن خب حالا خیلی از دندان صدفی دارن بعضی ها دندانشون آهکی زود ریزش میکنه و دندانه هاشون برای تقویت ریشه دندان بنیه دندان و اینکه که دندان ها زود فاسد نشه چه باید مصبب بکنن چند چیز باید رعایت کنه یک خلال بعد از غذا جایی که آب هست با چوب خلال دندان هر دندون خلال کنه زیر آب بگیره باز دندون بعدی این یکی دوم مسواک قبل از وضوع یا مسواک قبل از خواب یا مسواک زدن در سحرها سوم رفتار منفی با خودش رو ترک کنه رفتار منفی چیه؟ یکی از سوقات مدرنیته و زندگی آپارتمانی اینه که دستشوییشون، حمامشون جای جامسواکیشون هم هست جای وزو هم میگیرن هست جای قصدی هم که میکنن هست با اینکه تو تروایات داریم میگه در حمام مسواک نزن یورس و جزام اسنان دوچار خوره دندان میشه حالا اصطلاح شما یعنی دندوناش خورد میشه میریزه سست میشه استحکامش از بین میره چه مینای دندون چه عاج دندون میگه در دستشویی توالت مسواک نزنید تعفن شدید دهان میاره حالا متاسفانه مثلا 4 متر و چند متر آب و. از این حرفا حاجی ها جمع. اینا رو سرهم درست میکنن ببخشید لفظام بد میشه سنگ توالت مثلا اینجا است بالای دوش همون گذاشته. تو مثلا یک قسمت کوچیک مثلا یک کنیم در دو مثلا هم بگیم این برای مثلا دستیر روشه جامسواکی گویشتن و سشوار هم میداری سایشم هم شده تمام اینا مکروه یعنی این اسلامی نیست علمی هم نیست بعد جنبه دید ظاهری بحث کپیتالیسم و سرمایی بله هست اما نه علمیه تو بحث پزشکی و نه شعریه چون تو توالت مصواک زدن مکروه تو حمام زدن مکروه حتی دست و پاش آجام جایی سنگ توالت بشوره این اصلا مکروهه و میگه یورسال فقر، فقر بهداشتی میاره پس اینا باید جدا جدا باشه الان متاسفانه بعضی رفتارشون با خودشون منفیه این رفتار منفی با خودم باید چی بشه؟ ترک بشه مطلب چهارم چیکار کنم که خون روش لسه نداشته باشه؟ ترابون لسته نداشته باشم افتادگی لسته نداشته باشم لسته ها صورتی رنگ محکم به بن دندان چسبیده باش تو خواب و بیداری خون نیاد تو مارمزون غیر مارمزون هم خون نیاد اینجا با محلول سرکه تو دهن بگردونن مزمزه کنن غرغره کنن بریزن بیان حالا سرکه سیب یا غیره فرق نمیده فرق نمیده نمید. چون نمیخوایم بخوره نه. حتی سرکی سفید هم باشه سنعتیه اشکال نداره اما یک سروم استکان سرکی سفید دو سروم هم آب اگر کسی آلرژی یا حساسیت خواست داخل دهان و حلق داره میشه یک شیشم سرکی سفید پنج شیشم آب شبا قبل از خواب تو دهن بگردونه قرغره کنه بریزه بیرون حتی خلط چسبنده پشت حلق و کیپ بینیش هم باز میشه یکی دیگه از مسائلی که خیلی مهمه در 24 ساعت چند بار از خمیر دندان استفاده نکنند چه ایرانی چه خارجی. تو 24 ساعت یک بار استفاده کردن زیاد هست. چون فلوراید اضافی نباید مصرف کرد. دندان سیاه میشه. و تورمه و میگیرن. یک بار تو 24 ساعت از خمیر دندان استفاده کرد زیاد هست. حالا اون دوباره دیگه گفتیم خلال بعد از قضا جایی که آب هست و مسواک قبل از بوزو میتونه با محلول آب نمک اگر فشار خون ندارد مسواک بزن شستشو بده لستهار قرقره کنه بیزه بیرون برای استحکام لثه و دندان و ریشه و دندون لقیشون هم خوب بشه این مثل نردون متحرک میشه ببخش این بد میشه مثلا اگر این خودکار شخصی باشه که دخانیات زیاد بکشه یا مثلا خدای نکرده مواد افیونی بکشه اینا قالبه هم لسته هاشون قهوهی و مایل بستی میشه و دندوناشون حالت لقی زیاد داره با دست میره و میره. اینا باید این رفتار منفی با خودشون رو ترک کنن از دخانیات و مواد افیونی ترک کنن بعد پودر چوب عراق و پودر صاد کوفی با سین این دال پودر چوب عراق و پودر صاد کوفی این دوتا رو به نسبت مساوی پود کنن مخلوط با هم اینا در عطاری ها هست؟ بله بله هر عطاری دوستان هم برم حاجبا من خیال میکنم تا کلاس درسم گایی اصلا اسم کسیه میبرم من ما با کسی نه قرار دادن مخوان بگم به رئیس و مرقوس رو برن نخوره اگه دارو خونه احسن. مرکزی امام برن که چه بهتره پودر چوب عراق و پودر سعود کوفی. احسن به نسبت مساوی اصلا شب بعد از شامش خلال کرده جایی که آب هست قبل از خوابش هم زده با خمیر دندون قسیه هنگ شسته حالا از این مخلوط پودر چوب عراق و پودر سعود کوفی میزه رو مصفاکش یک دور رو دندوناش بکشه رو لسته هم آروم لسته هم محکم ریشه دندان توی فک استوار میمونه به اصطلاع امروزی ها حالت ردیفیش استحکام پیدا میکنه تو بحثه ارتودانسی ده. ده. و اما سوال کردن که برای رفع اون بار و زردی روی زبان اونجا باید با محلول آب سرکه تو دهن نگه داره و با پرزای مسواک روی زبان بکشه میتونه قبل از مسواک هم با خمیر دندون از چیه؟ کبد چربه؟ یکیش اونه یکیش بیماری قنده یکیش هم نه قالب مردم ماشاءالله سالمه به خاطر اینکه آج و مواد ای میخورن اما میوجات و سبزیجات به همراه غذا قضا نمیخورن بار التهابات میره بالا رضا هم سرسوزه معده و پوده دارن گای ترشان میکنن گای سردل میکنن و هم زبونشون بار میگیره. مثلا برنج سفید، ماکارونی، نون کیک و ما لانده سیب زمینی کوکو از این چیزها میخورن. اما میوه مثلا یه دونه سیب بخوره. یه مش سبزی خوردن بخوره. چند برگ کاهو بخوره بدون سس به همراه غذاش. سیب بعد از غذاش. یا مثلا پرتقال شیرین وسط غذا یا یک لیمو شیرین وسط غذا. این کار رو انجام نمیده. بعد حالا ظاهرش بخوایم تمیز کنیم. قبل اینکه مسافق بزنه، خمیدم دو میزنیم روی چوب مسافق روی زبونش بکشه و دهنشو بشوره بزه بیم. یا با محلول آب سرکه که تو دهن هست، حالا با مسافق روی زبونش بکشه. بله اما در خصوص MS هم باز سوال مطرح میشه. مطلب گفتیم. فرمودید در یه جلسه آموزش. حالا به احتمال خواهیم کرد. هرچیزی که برایشون بدتر کنه. غندای شیمیایی، اسانس‌های شیمیایی، ترانس چربی بالا، کافئین زیاد، فست، فودها که سوسیس، کالباس، همونایی که پیتزا، مرغ کنتاکین غذای مونده، غذای خیلی چرب و یا صاف کردنی یا تعدیک یا دو طرفه کوکو، حال اینا رو بدتر. بعد چیزهای توندوتیست، فلفل، سس فلفل، غذای اینا، اینایی که بده ترک کنه تو جیره قضاییشون صبح شیر اصل میذاره شبا قبل از خوابش آب سیب اصل میذاره در بین روز مقویه های اعصاب میخوره یه بار با عنوان دوتا دارو مثلا گل رای یا هو فاریقون یه قاشق چای خوری در یه استکان آب جوش بعد با اصل آبیشان نعنا شیرین نکنه اول مقرب هم گل بحار نارنج یه قاشق چای خوری یه استکان آب جوش وله هم که شد بعد با یه قاشر مرم بخوری یا غذا خورید اصل آبیشن نعنا شیری میکنه میخور عنوان یک میانورده غذایی مفید برای همه افراد حتی ام ایسیا و افراد سالم داروی مقوی قلب اعصاب و خوشبو کننده پوست و عرق بچیه؟ چیه؟ گلاب طبیعی به اضافه عرق بیدمش به اضافه اصل حالا هر کسی به خودش نگاه کنه مثلا کسی مشکل پوست داره اصلش اصل گوند میزاره یه کسی احسابش به هم ریخته بی هاوسلس افسرگس اصلش آبیشن نعنا میزاره کسی تجمع مایات اضافی بافتیش زیاده اصل استخدوست میزاره حالا بستیگه به افراد داره کسی خونیه ناشی از لنفوسیت ها داره. گویچه های خونش کمه. یونجه یا عرق یونجه یا عسل یونجه میذاره. گلوبولای سفید خونش میره بالا. نا قابل عرض دکتران محترم پس اینجا نصف استکان گلاب. نصف استکان هم عرق بیدمشک. این هم یک قشق پلوخونی عسل دیگه حالا هر مؤمنی دوست داره خودش اولادش هیچ ضرری هم نداره برای همه اخشار همه سنین مفیده مغزی قلبه مغزی اعصابه ملین مزاج یعنی ست دیو پوست بدن عرق بدن هم خوشبو میشه بسیار عالی سلامت. برخی از افراد گرفتگی مستمر بینی دارن و برای تنفس با مشکل مواجه هستند مطرح کردن که ما آب و لرمس رو باقی می میکنیم و شبها در خواب هم از طریق دهان نفس میکشیم اینا علل مختلف داره یک با سینوساشون التحابیه یا کیپ بینی دارن یا پولیپ بینی دارن زایده گوشتی یا زایده استخوانی یا رفتارشون با خودشون منفیه مثلا اگر هوای گرم و خشک یا هوای سرد و خشک یا هوایی که ذرات معلق در هوا یا آیروسل یا هیدروکربان هایی محیط زیاده حالا نه هدبند داره و چفیه نه کلا داره نه ماسک داره هیچ کدوم نداره حالا سوار چرف و مطور میشه یه رفتارش با خودش منفیه یک بار دیگه نه ماشین داره شیشه ماشین پاینه یه بار دیگه میره توی مسیر مستقیم وزش با جلو پنکه یا کولر وایمیسه یا میشینه که علاگاش مثلا خوش یه با دیگه از حمام یا استخ میاد و سرش نمیبنده در همه این موارد رفتارش با خودش منفیه هم خشکی داخل بینی هم کیپ بینی میگیره و تنفس از راه بینی براش مشکل میشه پس رفتارشون با خودشون مثبت باشه یعنی عکس اینایی که گفتم عمل کنن دوم این که قبل از خواب بخور اوکالیپتوس در هوای اتاق باشه اگر کسی کیپ بینی داره میتونه یه قطره اوکالیپتوس تی این بینی تی این سراخه بینی یه قطره، هم تی این سوراخ بینی بچه اگر کسی نه باز مشکل کیپ بینی تو هم با خلط چسبنده داره گفتیم قبل از خواب قرقره کنه با محلول آب سرک. اگر کسی پولیپ بینی داره لازم نیست جر راهی پولیپ بینی بره مخصوصا وقتی پولیپ بینیش به نوع زائده گوشتی هم. حالا با قطر چکونای باریک روی خود پولیپ یه قطره اوسانس گزنه یا آثاره گزنه به چکونه روی خود پولیپ هر شب اینو تکرار کنه کم کم پولیپ بینی افعی میره و تلفظ از راه بینی راحت میشه چون طالبان حجقا اینها جراحی میکنن پولیپ بینی اما از های برگشت پذیر باز پولیپ بینی اود میکنه و در بعضی ها دیده شده که شدیدتر از پولیپ قبلش میشه یعنی کلا دیگه نتونن از بینی نفس بکشه چشمهاشون گرد میشه صورتشون گرد میشه همیشه دهنواز باز میخوان این مشکلات برای اینکه برطرف شه همینه که گفتم رفتارشون باهوششون منفی نباشه بخور اوکالیب توس باشه اگر زائده گوشتی هست به نوع پولیپ گوشتی با آسانس یا آساره گزنه رو خودش بچه سوالای سوالهای دیگه هم که هست هجابا بعضی پزشکی جدید نمیدونه اگر اجازه بدین این سه کلمه سلام زیاده شما لطفا بودیم. در پزشکی جدید بعضی بیماری هست دارو ندارن چه خوبه که دکترای محترم بزرگوار ما بله این آره بدونن هم برای خودشون خوبه هم برای مریضای عزیزشون خوبه مثلا یکی از بیماری که چندین نوبت افراد مراجعه کردن مومن بیماری پم فیگوس یک بیماری پوستیه تابل های مختلفی بدنشون میزنه پزشکی جدید دارو نداره داروی کورتان میده داروی واقعی افرادی که تابل های مختلف که گاهی بزرگ میشه اندازه نصف این فنجون و خود به خود میترکه داروش دو چیزه پس داروی ضد تاولهایی که جنبه ژنتیکی هم داره این بیماری یک خوردن پرتقال شیرین، مثلا در 24 ساعت سه یکی با صابونه یکی با نهار یکی با شام یکی هم داروی مرکب است یک پرتقال شیرین دو عدد لیمو امانی اگر لیمو ترش شیرازی بود یک عدد لیمو ترش شیرازی یا دو عدد لیمو هایی که حجم و وزنش کم. به اضافه 20 گرم گلاب پس پرتقال شیرین دو عدد لیمو ترش تازه کوچی، یا یک لیمو ترش شیرازی که بزرگه اضافه 20 گرم گلاب طبیعی این ستارو مخلوط باهم کنن آب پرتقال بگیرن آب لیموترش هم بیگرن تازه 20 گرم گلاب این ستارو مخلوط باهم کنن بین روز و اسرانه اینا رو یواش یواش بخورن مریض محترمی که بیماری تاول دارد یا بیماری پوستی پنفی گستارا کم کم خوب میشه اصلا لازم نیست به من میگن خود مریض میره کم کم خوب شد اگر تاولات ترکیت حاجغا باز برای این که جاش نمونه لک نشه افونت باکتریایی نگیره جای تاولا زرچوبه خالص بریزن قوی ترین داروه صد افونت های باکتری و این باکتری های موزر از داخل میکشه بیرون پوست التیام پیدا میکنه رد رده و لک پوست باقی نمونه بله خیلی متشکرم دوستان دارو بیماریای دیگه هم است یکی بگم مردم مبتلاده هم یکی از بیماریایی که گاهی مردم مبتلا هستن و پزشکی جدید دارو نداره و این اینه که شخص میره آزمایش ادرار میده و دکتر محترم میفرماید کراتینت بالاست مثلا کراتین خونت 6 و 7 اینجا پزشکی جدید دارو نداره میگه التماس داره اگه بخواید ظرف 20 روز کراتین 6 و هفت مریض را به دو و دوانیم برسونید قابل عرض همه نور چشمان ما متخصصین اورولوژی و نفرولوژی داروشین قومنا به مدت 20 روز اینجوری مریض غذا بخوره پرهیز مطلق در 24 ساعت 4 لیوان آب 4 لیوان آب جوش ولرم اما با این آب و آب جوش ولرمش کم کم یعنی یه قاشق یک قاشق چای خوری اصل کوهی بخوره دوم در بین روز یک لیوان تا دو لیوان آب سیب با پوستش به شرطی که پوست سیب سمن چسب نداشته باشه یک لیوان آب سیب تازه رسیده با پوستش به شرطی که سمت چسب نداشته باشه اینم بین روز شبها قبل از خوابش سیاهدانه با اصل کوهی بخوره یعنی یک قاشو بخوری سیاهدانه با اصل کوهی بعد از زهرا یک عدد تا دو عدد انار شیرین با هستش به جاو بخوره به هر متخصص متعهدی در اورولوژی و نفرولوژی سلام میرسنم مریض شما به 20 روز چراتین 76ش به دو, دو می‌رسه بسیار عالی سلام سپاسگزارم البته پرسش‌های دیگری هم دوستانمون پیش روی من گذاشتن در خصوص بیماری تیروئید گوات اگر گوات ساده داره هاجا دکترای محترم متخصص غدد فوق تخصص غدد قرص تیروکسین شیمیایی میدن خانوم ها یا آقایانی که گواتر ساده دارن یعنی گواتر غیر سمی دارن داروشون دو چیزه یکی نمک یدار اول و آخر غذا بخورن نکه قاشق چای خوری کلن تو 24 ساعت میشه 4 گرم نهار شام میخوره یک گرم قبل نهار یکی بعد یک گرم قبل شام یکی بعد نمک یدار داروی دومیشون زررته این زررت رو باید سه جور بخورن نان ذرت با سبحانه یک عدد نان ذرت وسط روز و عصرانه یک مش ذرت بوداده بخور با شامشون یه بشقاب سوپ ذرت بخور نیازی به قرص تیروکسین شیمیایی نداره بله خیلی متشکرم وقت ما تمام شده بله روزی یکی از اولیا به حضرت الیاس و حضرت خیزر علیه السلام شکایت کرد که مردم زیاد قیبت کنند و قیبت هم از گناهان کبیره است و هرچه آنها را نصیحت میکنم و آنها را من میکنم به حرفم اعتناع کنند چه کنم؟ حضرت الیاس فرمود چاره این کار این است که وقتی وارد چونین مجلسی شدی و دیدی غیبت می کنند بر محمد و آل محمد سلوات بترست پروردگار ملکی را بر اهل آن مجلس موکل می کند که هر وقت کسی خواست قیبت کند آن ملک جلوی این عملزش را می گیرد و نمی گذارد شود سپس حضرت فرمود وقتی کسی در وقت بیرون رفتن از مجلس سلامات بفرستد حضرت حق ملکی را میفرستد تا نگذارد که اهل آن مجلس قیبت او را کند از تشریف فرمایه شما استاد زیایی عزیز در برنامه خیلی سپاس انشالله خیلی زود پنجشنبه بشه و سنبت. شما مجدده در زیارت کنیم سلامت باشین خدا همه شما و همکارای خوب و ملت خوب و دکترای خوب رو با امنیت و امنیت بداره تیدگان و قلوبتون رو به جمال و قلب نورانی مولا صاحب زمان منبر خود به برکت سلامات و بر محمد و آل محمد اللهم صلی علی محمد و محمد